عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در این جلسه برای دومین بار کتاب ابرانیان رو از عهد جدید مطالعه خواهیم کرد. کتابی که به عنوان شاهکاری الهیاتی در شناخت عیسی مسیح معروف شده. در درس گذشته معلم ما گفت که سه کلمه کلیدی وجود داره که به ما کمک میکنه این شاهکار الهیاتی و الهیات ابرانیان رو درک کنیم. اون کلمات عبارتند از بهتره باور کنید و آگاه باشید. در درس امروز معلم ما بیشتر در مورد این عنوان توضیح خواهد داد. بهتره اونو باور کنید. با هم گوش می کنیم. در جلسه اول شما رو تشویق کردم که کتاب ابرانیان رو مطالعه کنید و دنبال مبحث کتاب باشید. بهتون گفتم که سه کلمه کلیدی هست که به شما کمک میکنه بحث این کتاب رو درک کنید کلمات عبارت بودند از بهتر که گفتیم نویسنده مخصوصا در نه باب اول سهر داشت که بگه عیسی مسیح بهتره بعد از اون کلمه باور بود نویسنده بارها و بارها میگه بهتره که باور کنی تا حالا این جمله رو شنیدید او به کرات بعد از اینکه در مورد عیسی صحبت میکنه به ما میگه بهتره باور کنی بعد کلمه سوم هست او چندین بار به ما هشدار میده در مورد زرافت ارتداد به ما هشدار میده اگر در بررسی قدیم با ما بودید کلمه ارتداد رو حتما به خاطر میارید در کتاب داوران در مورد ارتداد صحبت کردیم ارتداد یعنی اتخاذ مسیری در یک نقطه از سفر ایمانیتون و بعد برگشتن از اون مسیر که در ابتدا انتخاب کرده بودید خارج شدن از جایگاه ایمانیتون گاهی گفته میشه که شما ایمانتون را از دست دادید و یا از ایمان جدا شدید. در این نامه هشدار زیادی در مورد ارتداد هست اون هشدارها قالبا بلافاصله فاصله بعد از کلمه زنهار اومده. نویسنده به ما میگه برذر باشیم تا اینکه در دام ارتداد یا فریبندگی گناه سقوط نکنیم و از ایمان خود بر نگردیم سه کلمه کلیدی در کتاب رانیان بر از بهتر ایسای مسیح بهتر است باور بهتره که باور کنید و زنهار تا اینکه متوقف نشه و یا از ایمانتون دور نشید یا مرتکب ارتداد نشید. مفهوم مورد نظر نویسنده از ارتداد اونطور نیست که یک شخصی به آین یا الهیات غلطی معتقد باشه. نوع ارتداد مورد نظر او مربوط به شخصی هست که الهیات درستی داره اما به اون عمل نمیکنه. یادتونه که پولس تیموتاوس رو اینطور به چالش می کشید. با چیزی که می دونی خواهی کرد. همون چالش وقتی نویسنده کتاب ابرانیان این شاهکار الهیاتی رو در مورد عیسی مسیح می نویسه، بار قلب او هم هست. کتاب ابرانیان پر از نصایح و هشدارها هست. کلمات دیگری که به همراه این هشدارها میارین ها هستند تا اینکه، تا اینکه ما از چیزهایی که شنیدیم و باور داریم بر نگردیم. تا اینکه ما قلبی شرید و به ایمان نداشته باشیم. تا اینکه ما با فریبندگی گناه سخت دل نشیم. تا اینکه از وارد شدن به نجات باز نمونیم. بسیاری از این هشدارها مربوط به کار عیسی توسط ما هست. گفته شده زندگی کردن در مسیح یا زندگی مسیح در ما این امکان رو برای او فراهم میکنه که کارهاش رو توسط ما انجام بده بدون هیچ کمکی از جانب ما. بذارید دوباره این جمله عمیق رو تکرار کنم. زندگی کردن در مسیح با زندگی مسیح در ما این امکان رو برای او فراهم میکنه که کارهاش رو توسط ما انجام بده بدون هیچ کمکی از جانب ما من فکر میکنم این شرح خوبی از چیزی هست که عیسی در آخرین ساعاتی که در بالاخانه با شاگردانش بود به اونها گفت بسیاری از هشدارها مربوط به کار عیسی در ما و توسط ما هست تا اینکه از فیض خدا در خدمتمون قافل نشیم بعضی از هشدارها به ما اختار میکنند که حق نخص زادگی خود را مانند ایسو به کاسه یاش نفروشیم یا به نحوی زندگی کنیم که کسانی که ما را بینن به خاطر طرز زندگی ما از ایمانشون به مسیح و پیروی از خدا دور نشن نصیحت کتاب مقدس به دنبال این کلمات میاد پس بیایید. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم مبادا کسانی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد بعد نویسنده ما رو تشویق میکنه که در کمال پیش بریم و به لحاظ روحانی رشد کنیم. همینطور نسیت در مورد پرستش هست در باب ده کتاب ابرانیان تشویق خاار العاده ای می میبینید که به شما میگه چطور برای آمدن به کلیسا آماده بشید. من نمیدونم شما برای رفتن به کلیسا چطور آماده میشید؟ بسیاری از مردم حتی به آماده شدن برای رفتن به کلیسا فکرم نمیکن. اما اینجا متنی هست که به شما میگه چطور برای رفتن به کلیسا آماده بشید؟ او میگه از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناهالود پاک ساخته و بدنهای را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن معترفی محکم نگه داریم زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می‌کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جم شدن با برادران در مجالس کلیسایی قفلت نکنیم چنانکه بعضی ها به این عادت کرده‌اند بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می‌شود بسیاری از مردم به کلیسا میروند تا همه این چیزهایی را که نویسنده کتاب عبرانیان میگه در کلیسا به دست بیارند اما باید این کارها رو قبل از رفتن به کلیسا انجام بدیم بسیاری از مردم به کلیسا میرند چون میخوان از ایمانشون یقین حاصل کنن. بسیاری از مردم به کلیسا میرن چون میخوان قلبشون رو با خدا یکی کنن و قلبی حقیقی داشته باشن. اونها میخوان که قلبهاشون از وجدانی ناپاک پاک بشه. اونها اطمینانی برای بخشششون میخوان و میخوان مطمئن بشن که پاک شدن. نویسنده ابرانیان به ما میگه که قبل از اینکه به جمع کلیسایی بپیوندیم این کارها رو انجام بدیم. اینجا ممکنه سوالی براتون پیش بیاد. خب پس چرا به کلیسا میریم؟ کلیسا مثل یک پمپ بنزینه اینطور نیست آیا همه ما به کلیسا نمیریم که تشویق بشیم آیا به این دلیل به کلیسا نمیریم این نویسنده میگه نه شما به کلیسا میرید تا همدیگر رو ملاحظه کنید و همدیگر رو با محبت و کارهای خوب برانگیزید پولوس گفته که وقتی برادران یک جا جمع میشن هر کاری که انجام میشه باید برای بنای همدیگه باشه تمام عطایای روحانی به افراد کلیسا داده شده تا همدیگر رو بنا کنن. این نویسنده هم وقتی نصیحتی برای پرستش به ما میده با پولس هم عقیده است او به ما میگه خدا رو با احترام خدمت کنیم پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتهاند ما باید از هر غید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم این تشویخ ها مربوط به کار خدا توسط ما هست. وقتی کتاب ابرانیان رو می‌خونید، باید بر مبحث این کتاب تمرکز کنید. همونطور که گفتم کتاب ابرانیان استدلالی داره. وقتی اون استدلال رو بفهمید فهمید، اون موقع معموریت کتاب ابرانیان رو هم خواهید فهمید. معموریت کتاب ابرانیان این بود که ایماندارانی ای رو که در جفا بودن تشویق کنه، کسانی رو که دلسرد شده بودن و در ایمانشون متزلزل شده بودند دوباره به مسیر و تعهد واقعی در ایمان برگردونه وقتی به مبحث کتاب عبرانیان واقف بشید خواهید فهمید که مأموریت این کتاب این هم بود که اطمینان‌های کاذب را از کلیسا پاک کنه از کسانی که هنوز تعهدات واقعی در ایمانشون نداشتند وقتی مبحث این کتاب رو بدونید خواهید فهمید که مأموریت و پیغام کتاب عبرانیان چی هست کتاب عبرانیان پیغامی پویا داره پیغام کتاب عبرانیان این هست ایسای مسیح بزرگتر هست اولین نکته اینه که ایسای مسیح بزرگتر از فرشتگان هست خدا به هیچ کدام از فرشتگان هرگز نگفته تو پسر من هستی و همینطور خدا به هیچ کدام از فرشتگان نگفته که شبیه پدر خواهد شد خدا به پسر میگه ای خدا تخت تو تا عبدالاباد است در آیه هشت از ابرانیان باب یک ما میبینیم که خدای پدر خدای پسر رو خدا خطاب میکنه این البته شهادتی برای الوهیت ایسای مسیح هم هست. نویسنده بعد از تمام این چیزها که در مورد فرشتگان میگه به ما میگه که فرشتگان چی هستند. او میگه فرشتگان روحهای خدمتگزاری هستند که برای خدمت به مقدسان یا ایمانداران فرستاده میشن. فرشتگان عیسی مسیح را خدمت کردند. بعد از اینکه نویسنده مطلبی در مورد فرشتگان به ما میگه، بر این نکته به وضوح تاکید میکنه که عیسی مسیح بهتر از فرشتگان هست. بعد همونطور که گفتم نویسنده میگه ایسای مسیح بهتر از موسی هست، ایسای مسیح بزرگتر از یوشه هست، ایسای مسیح بزرگتر از خیمه پرستش عهدها و كهانتها هست. من فکر میکنم که او همه اینها رو به وضوح بیان میکنه، اما ملاحظه کنید وقتی وارد استدلالش میشه، از باب دو او شروع میکنه به هشدار دادن و نصیحت کردن، نصایح و هشدارها و تشویخها در این جملات هستند. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آن چه شنیده توجه کنیم مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضی روبرو شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه می از از آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند، حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند و در ضمن خدا با آیات و عجائب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود به عبارت دیگه نویسنده به ما میگه که عیسی بهتر از فرشتگان هست. شریعت موسی توسط فرشتگان آمد اما انجیل عیسی مسیح توسط خود عیسی آمد اگر کسی از شریعت موسی تقللف کنه محکوم به مرگ و سنگسار میشه پس چطور میتونید اگر نجاتی را که توسط خود خدا به وسیله عیسی مسیح موعظه شد و توسط کسانی که با او بودن تأیید شدن کار کنید از عاقبت آن بگریزید؟ بعد از این نکته هشدارهای نویسنده بر وقایه که در تاریخ یهود اتفاق افتاده تمرکز میکنه. اون اده از شما که در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید آیا با به کتاب اعداد رو به خاطر میارید؟ زمانی که بنی اسرائیل به مدت چهل سال در بیابان سرگردان بودند، خدا ده بار اونها رو به چالش کشید که به او باور کنن. خدا ده بار معجزه کرد، اما اونها نخواستند به او باور کنند. خدا بالاخره با این قوم به جایی رسید که گفت دیگه کافیه، به حد کافی موجزه کردم، شما هر یز وارد سرزمین معود نخواهید شد. خدا برای حدود بیش از دو میلیون نفر صحبت میکنه و به اونها و استخوان‌های شما در این صحرا سفید خواهد شد چون نخواستید به من باور کنید تنها دو نفری که از بین شما وارد سرزمین وعده خواهند شد یوشه و کالیب هستند چون اونها به من باور کردند بقیه شما به من باور نکردید بنابراین در این بیابان هلاک خواهید شد وقتی کتاب اعداد را بررسی می‌کردیم گفتم که باب چهاردهم کتاب اعداد یکی از ترسناک‌ترین باب‌ها در کل کتاب مقدسه. در کتاب ابرانیان باب سه آیات هفت تا نوزده و ادامه اون در باب چهار تمرکز نویسنده بر باب چهارده کتاب اعداد در تاریخ یهود است. نویسنده به این مردم یادآوری میکنه که پدران اونها به مدت چهل سال در بیابان آزمایش شدن و وارد آرامی سرزمین وعده نشدند بنابراین او هشدار میده و میگه زیرا چنان که روح القدس میفرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید، تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری پدران شما با وجود آنکه آنچه در چهل سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه های مرا نیاموختند. بسیاری از این یهودیان ایماندار تحت جفا بودند و به این فکر میکردند که ایمانشون رو رها کنن به این دلیل نویسنده میگه برای آنکه هیچیک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار میبریم یکدیگر را تشویق نمایی زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم یا چنانکه کتاب مقدس میفرماید امروز اگر صدای او را بشنوید مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید نویسنده اینجا سوالی مطرح میکنه آیا کلام خدا رو شنیده اید؟ آیا میتونید صدای خدا رو بشنوید؟ یادتونه در پیدایش سه خدا از آدم میپرسه کجا هستی؟ بهتون گفتم که صدای خدا معرف کلام خدا هست در پیدایش سه شما میبینید چیزی شرط داده شده نه تنها اونطور که بود بلکه اونطور که هست خدا به میاد. و ما صحبت میکنه و با در نظر گرفتن اینکه کجا باید باشیم از ما میپرسه کجا هستی. آدم اینطور پاسخ میده. من صدای تو رو میشنوم، اما صدای تو منو میترسونه چون که میدونم اوریانی من آشکار خواهد شد و من نمیخوام برهنگی من آشکار بشه. به این دلیل مخفی شدم. بهتون گفتم که اون تفسیر خوبی از طبیعت انسان بود. وقتی خدا با ما حرف میزنه ما از او زیاد دور نیستیم که نتونیم صدای او رو بشنویم. اما صدای خدا ما رو میترسونه و نمیخواهیم وارد نور حقیقی بشیم که او میخواد به ما نشون بده. ما از خدا و حقیقتی که سعی داره به ما نشون بده مخفی میشیم. این داستان زیبا تعریف کتاب مقدسی گناه رو به تصویر میکشه که رد کردن نور هست. ایسا در باب سوم و نهم انجیل یوحنا به ما میگه که محکومیت ما اینه که نور به این جهان آمد اما ما تاریکی را دوست داریم. چون اعمال ما شریرانه هست. اینجا در این بخش از ابرانیان با آبای سه و چهار نویسنده میگه هرگز این کار رو نکنید. چون اگر هنوز میتونید صدای خدا رو بشنوید، اما به اون گوش نمیدید، مانند همون قوم در بیابون هستید که به مدت چهل سال سرگردان شدند. خدا به جایی رسید که اون مردم رو در بی ایمانیشون به حال خودشون رها کرد. ممکنه روزی برسه که دیگه صدای خدا را نشنوید. خدا از شما برگرده و شما نتونید وارد سرزمین وعده بشید و در مسیح زندگی کنید چون که صدا رفته رفته آهسته تر و آهسته تر میشه پیام عبرانیان سه و چهار هشدار ترسناکی هست. همان هشداری که در باب چهارده کتاب اعداد بود من شما رو به چالش میکشم آیا در بی ایمانی خود سرگردان خواهید شد این امکان هست که هشدار وحشتناک باب 14 کتاب اعداد و باب سوم و چهارم ابرانیان خطاب به شما باشه. بسیار یوقات ما این کلمات رو در کتاب مقدس می‌بینیم. بذارید هر کسی خودش رو آزمایش کنه. هیچ مسئله‌ای در زندگی مهمتر از ایمان شما به عیسی مسیح و کاری که برای شما کرده نیست. شما را تشویق می‌کنم باب سوم و چهارم ابرانیان رو همراه با باب چهاردهم کتاب اعداد مطالعه کنید و بعد سخنان پولس رسول رو در باب سیزدهم دوم قرنتیان که ما رو تشویق میکنه خودمون را آزمایش کنیم و ایمانمون به مسیح رو تصدیق کنیم کار بردی نماییم. شاید مدت هاست که به این برنامه گوش میدید. یا حتی به کلیسا رفتیدم و هرگز به ایمانتون به ایسای مسیح اقرار نکردید. اما من شما رو تشویق می کنم همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار میبریم یکدیگر رو تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم. یا چنانکه کتاب مقدس میفرماید امروز اگر صدای او را بشنوید مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید ما بعضی از نصایح و هشدارهایی که در بابهای نخست کتاب ابرانیان بود ملاحظه کردیم حالا میخوام در ادامه بررسی کتاب ابرانیان بیشتر بر این نصایح و هشدارها تمرکز کنیم در باب چهارم کتاب ابرانیان نویسنده میگه پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است ما باید بسیار مواظب باشیم مبادا بادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت زیرا وقتی که آن را شنیدن با ایمان به آن گوش ندادند بسیاری از مردم در مهمانی ها و جشنهایی حضور داشتند که با غذا از اونها پذیرایی می شده حالا تصور کنید صد نفر در یک چنین مهمانی حضور دارند. 99 نفر از اونها سیر شده از سر میز بلند میشن اما یک نفر از اونها نقش زمین میشه و به شدت بیمار میشه شاید به خاطر دل درد یا زخم معده باشه بنابراین وقتی از همون غذایی میخوره که بقیه خوردن اون غذا وارد دستگاه گوارش او میشه و او رو به حال مرگ میندازه 99 نفر از اون غذا لذت میبرند و سیر میشن چون که دستگاه گوارشی سالمی دارن نویسنده کتاب ابرانیان وقتی باب چهار رو شروع میکنه، چیزی شبیه به این رو توصیف میکنه. او به ما میگه وقتی انجیل موعظه میشه، وقتی مردم صدای خدا رو میشنون، گاهی این به نفع اونها هست چون که این کلام با ایمان اونها یکی میشه. اما وقتی که کلام خدا اعلام میشه با ایمان همراه نباشه، نه تنها برای اونها سودی نخواهد داشت بلکه اونها رو محکوم خواهد کرد. این مثل مسئله برزگر هست که، عیسی در متا سیزده مرقس چهار و لوقا هشت گفته کشاورزی بزر میپاشه و اون بزر در چهار زمین مختلف میفته به این دلیل اون موقع به شما گفتم که مسئله برزگر رو میتونیم مسئله چهار خاک بنامیم یا چهار مرد در کلیسا شما کدام هستید؟ این چالش این قسمت از کتاب ابرانیان هست نویسنده به ما میگه چون شنوندگان پیشین پیام نتوانستن وارد سرزمین وعده شوند چون اونها به خدا باور نکردند خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین میکند زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد میفرماید امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید نویسنده عبرانیان این رو به یهودیان مسیحی شده میگه چون که به خاطر جفا در ایمانشون سست شده بودند بنابراین بر شماست که وقتی صدای خدا رو میشنوید قلبتون رو سخت نکنید چون اگر این کار رو بکنید اون شما رو محکوم میکنه با چیزی که میدونید چیکار خواهید کرد این همیشه چالش بزرگی برای ایمان بوده کاری که در مورد ایمانتون میکنید و یا نمیکنید شما رو محکوم میکنه بعد نویسنده اظهار بزرگی در مورد کلام خدا به ما میده و مینویسه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوظ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بمونه همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز هست و همه ما باید حساب خود را به او پس بدیم این تعریف قدرتمندی از کلام خدا و کاری هست که می تونه در زندگی انسان بکنه کلام خدا وسیله ای برای صحبت با ما هست در پیدایش سه درخت قدیم کلام خدا صدایی هست که در باغ قدم میزنه. در باب اول انجیل یوحنا کلمه جسم میپوشه. صدا به صورت بدن ظاهر میشه و بعد از اون ما کلامی مکتوب و کلامی زنده داریم. امروز ما صدای کلام زنده خدا رو توسط کلام مکتوب خدا میشنویم. متنهای عظیمی در کتاب ابرانیان وجود داره. اگر شما این کتاب رو با دقت و دعا بخونید و به دقت در اون تأمل کنید ینجین روحانی زیبایی خواهید یافت که به شما خدمت خواهند کرد مثلا در باب پنج نویسنده میخواد به موضوع اشاره کنه که درکش بسیار سخت هست او قصد داره به ما بگه که عیسی مسیح بهتر از کاهنین هست و از این رو می عیسی مسیح کاهنی هست نمانند لاوی یا هارون بلکه کاه است در رتبه ملکی صدق در اون نقطه او پرانتزی باز میکنه و می می‌خوام بیشتر در مورد ملکی صدق به شما بگم اما واقعا نمیتونم چون شما در یادگیری بسیار کند هستی من چیزی رو که دوست دارم در مورد ملکیسدق بهتون بگم نمیتونم بگم بعد اونها رو به خاطر اینکه موحصلین خوب کتاب مقدس نیستن سرزنش میکنه اما او ادامه میده و در مورد ملکیسدق صحبت میکنه اما قبل از این کار او این پرانتز رو باز میکنه که یکی از گنجینه‌های کوچکی کتاب عبرانیان هست. او مینویسه درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است شما که تا این موقع میبایست معلم دیگران میشدید هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفباب شما تعلیم دهند شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید کسی که فقط شیر میخوره خوره طفله و در تشخیص حق از باطل تجربه نداره اما غذای قوی برای بزرگ سالان و برای کسانی که قوای ذهنی اونها با تمرینهای طولانی پرورش یافته تا بتوانند نینک و بد را از هم تشخیص بدن این حقیقت زیبایی هست که در جای جای کتاب مقدس تعلیم داده شده وقتی به کلیسا میرید شبان شما که غذاهای روحانی از کتاب مقدس آماده کرده بلند میشه و چیزی رو که از کتاب مقدس آماده کرده به شما تعلیم میده به قول نویسنده کتاب ابرانیان و دیگر نویسنده های کتاب مقدس این مثل نوشیدن شیر هست چون شیر غذای زود هزمی هست به نوزادان شیر میدیم اگر تنها کلامی که میشنوید توسط شبانتون باشه که از کتاب مقدس براتون آماده کرده اگر این تنها وسیله تغذیه شما از کتاب مقدس باشه این نشون میده که شما به لحاظ روحانی هنوز نوزاد هستید اما اگر شخصا به کتاب مقدس مراجعه کنید و فقط شما باشید و روح القدس و کتاب مقدس و روح القدس کتاب مقدس رو به شما تعلیم بده حالا شما گوشت روحانی میخورید و دیگه نوزادی شیرخواره در کلام خدا نیستید که کس دیگری شما رو تغذیه کنه هدف اصلی دانشکده کتاب مقدس اینه که قوم خدا رو وارد کلام خدا بکنه و کلام خدا رو وارد قوم خدا بکنه وقتی این اتفاق میافته نوزادان روحانی که فقط قادرن شیر بخورن رشد می‌کنن و تبدیل به شاگردانی بالغ میشند که میتونن گوشت کلام رو بخورن و افراد بالغ روحانی بشن. وقتی شما یک شنبه ها به کلیسا میرید، در بسیاری از کلیساهای بشارتی یک هفته واعز درباره حزقیال هزقیال و استخوانهای خشک صحبت میکنه، هفته بعد او در راه اماوس هست و با شاگردان صحبت میکنه. هفته بعد در بالای کوه با ایسا در مععزه سر کوه و هفته بعد او در اول قرنتیان سیزده و بعد دوباره هفته بعد سراغ علیشه میره و به این ترتیب شما هر هفته فقط تکه های کوچکی از هر قسمت رو میگیرید و به این ترتیب درک موضوع کلام خدا بسیار سخت خواهد بود برای شما خیلی سخته که کتاب مقدس رو باز کنید و خودتون اون رو مطالعه کنید یکی از اهداف بیشمار دانشکده ی کوچک کتاب مقدس این هست که کتاب مقدس رو به شما معرفی کنه به نحوی که شما را آماده بکنه تا شخصا کتاب مقدس را مطالعه کنید و از روح القدس بخواهید که معلم شما بشه. در رساله اول یوحنا، باب دو آیه دو و بیستو هفت اگر شما مسیح را در قلبتون پذیرفته باشید در نتیجه تولد تازه شما مسیح از روح القدس دریافت کردید. یوحنا میخواد شما بدونید که شما نیاز ندارید که کسی شما را تعلیم بده. زیرا روح القدس که مسیح به شما داده است در شما زندگی میکند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او برحق است و در آن ناراستی نیست. پس همانطور که روح به شما تعلیم می دهد در مسیح بمانید. کلمه ی یونانی که به مس ترجمه شده عملا در یونانی به معنی مسیح است. تصور کنید که شما در سلولی بازداشت بودید و به شما یک کتاب مقدس میدادم. تصور کنید که کسی نبود که به شما کمک کنه. من با کسانی ملاقات کردم که عملاً چنین تجربه ای داشتن آیا باور دارید که روح القدس میتونست کتاب مقدس رو به شما تعلیم بده؟ بر اساس اول یوحنا دو و هفت، اگر تنها چیزی که شما نیاز دارید کلام خدا هست تنها چیزی که شما نیاز دارید کتاب مقدس و روح القدس هست روح القدس میتونه شما رو تعلیم بده من از مردی که سی ماه در سلول انفرادی در کشوری خارجی بازداشت بوده شنیدم که میگفت قبل از اون مانند بسیاری از مردم خیلی کم کتاب مقدس رو میدونسته. اما بعد از اون که سی ماه در سلول کتاب مقدس رو خونده شما اگر به بابی از هزقیال اشاره می کردید او نه تنها میتونست اون باب رو برای شما توضیح بده بلکه بابهای های پیش از اون و بعد از اون باب رو هم توضیح میداد. او هرگز در هیچ دانشکده کتاب مقدس درس نخونده بود. اما عملا سه سال و هجده ساعت در روز کتاب مقدس میخوند و روح القدس به او تعلیم میداد. اگر شما بتونید به این سطح در کتاب مقدس برسید که فقط شما باشید و روح القدس نویسنده ابرانیان میگه شما گوشت کلام رو می خورید. اما اگر فقط کسانی از کتاب مقدس مطالبی را آماده می کنند و برای شما تعلیم می دن، به لحاظ روحانی شما هنوز در کلام شیرخاره هستید. هدف من در دانشکده یک کچک کتاب مقدس در رابطه با تمام تکالیفی که به شما میدادم، تا در طول مطالعه کتاب مقدس انجام بدید همین مطلب بوده که مرحله شیرخارگی رو پشت سر بگذارید این از اهمیت دانشکده در تعلیم کسانی که می‌خواهند رهبر باشند کم نمیکنه. اما اگر شما چنین فرصتی نداشتید و نتونستید تعالیم معمول کتاب مقدس رو بگیرید روح القدس وعده داده که به شما تعلیم بده وقتی که به مطالعه کتاب ابرانیان ادامه میدید به نصیحت جالبی برمیخورید که بین فاصله بعد از نصیحت مربوط به گوشت و شیر اومده این نصیحت از ما درخواست میکنه که در ایمانمون بالغ بشیم او میگه پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده ایمان به خدا تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگزاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم بعضی از اینها نظریاتی هستند که اکثر مردم امروزی حتی تا کنون مطالعه نکردن. اما این نویسنده به اونها غذای نوزاد میگه و میپرسه که شما به مطالبه عمیقتر خدا خواهید پرداخت بعد نویسنده نصیحت بزرگی در مورد ادامه دادن به ما میکنه این نصیحت مشکل ترین متن در کتاب ابرانیان هست خیلی ها هستند که وقتی کتاب مقدسشون رو مطالعه میکنن و به این مطلب میرسن واقعا براشون سوالاتی پیش میاد تنها کسانی در مورد کتاب مقدس سوال ندارند که کتاب مقدس را هرگز نخوندن. اگه من موفق بشم که شما را به خوندن کلام تشویق کنم، سوالات بیشماری برای شما پیش خواهد اومد. این همون متنی هست که احتمالا سوالاتی را پیش میاره. وقتی شما این نصیحت را درباره ادامه دادن و بالغ شدن میخونید گنجین کوچکی خواهید داشت که برای بسیاری یک مشکل هست. او میگه زیرا آنانی که از نور الهی منور شده اند و تعمیعتیه آسمانی را چشیده و در روح القدس نصیبی دارند و نیکوی کلام خدا را در وجود خود درک کرده و نیروهای جهان آینده را احساس نموده اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند محال است که بار دیگر آنان را به توبه بکشانید زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به سلیب می میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند اگر زمین بارانی را که بران میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بارآورد، از طرف خدا برکت یابد اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به آورد زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد اما ای عزیزان در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید. بلکه می از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارس وعدهها میشوند پیروی کنید. حالا این متن بسیار مشکلی هست، بسیاری معتقدند که شما میتونید نجاتتون را از دست بدید بنابراین سوالی مطرح میشه. زمانی که نجات پیدا کردید آیا امکانش هست که نجاتتون را از دست بدید خیلی ها معتقدند که وقتی نجات یافتند برای همیشه نجات یافتند و ایده هم میگن نه شما امروز میتونید نجات پیدا کنید و فردا گم بشید این بحث 20 قرنه که ادامه داره بعضی ها اینطور بر موضوع تمرکز میکنن آیا مسئله اینه که شما خدا رو نگه میدارید یا مسئله اینه که خدا شما رو نگه میداره من معتقدم که این خداست که شما رو نگه میداره من به برگزیده شدن معتقدم و به این دلیل بحث بر سر نجات یک بار برای همیشه منتفی میشه. اما با متنهایی مثل این چی کار باید بکنیم؟ این نویسنده به ما میگه که این غیر ممکنه اگر به جایی رسیدید که منور شدید و آزمایش شدید و شریک کار روح القدس شدید، اگر منحرف بشید، به توبه به شما کار سختی خواهد بود. این متن بسیار سختی در کتاب مقدس هست من معتقدم جواب این مسئله مشکل در این متن، اون جایی پیدا میشه که نویسنده میگه، اما ای عزیزان در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. وقتی نویسنده در مورد منور شدن و آزمایش شدن و مشارکت کردن صحبت میکنه، من گمون نمی کنم که او در مورد افراد نجاتی یافته صحبت میکنه. او شخصی رو توصیف میکنه که با روح القدس ملزم شده تا جایی که آزمایش کرده و با روح القدس مشارکت کرده اما هنوز واقعا از خط ایمان عبور نکرده و تولد تازه نداره. میخوام بار دیگه به شما یادآوری کنم که مخاطبین اصلی این کتاب کسانی هستند که هنوز از خط ایمان عبور نکردند. اونها هنوز واقعا به عیسی مسیح اعتماد نکردند و به او اعلام وفاداری نکردند. تشویق و نصیحت و هشدار مورد بحث این کتاب مقاومت برای عیسی مسیح است. بیایید به وضوح تعهد خودتون رو به ایسای مسیح اعلام کنید. بعد از اون میتونید از نجاتتون اطمینان داشته باشید. من معتقدم که این پیغام این نصیحت دشوار در کتاب ابرانیان هست. باب شش آیات چهار تا شش باید در زمینه کلی مبحث کتاب ابرانیان تفسیر بشه. به گفته نویسنده او به چیزهای اشاره نمیکنه کنه که در نجات ما مشارکت دارن. نصیحت او در سراسر کتاب خطاب به ایمانداران ظاهری هست که هنوز تولد تازه ندارند چون هنوز ایمان نجات بخش رو در تعهدشان به عیسی مسیح ندارند در این متن مشکل نویسنده به کسانی هشدار میده که هنوز تولد دوباره ندارند تا مراقب خطر واقعی سقت روحانی باشند این هشداری برای همه کسانی هست که هنوز به ایمان نجات بخش در عیسی مسیح دست نیافتند. عزیزان، تال متوجه شدید که هرچه بیشتر در مسیح رشد میکنیم سالات بیشتری برمون مطرح میشه؟ هرچه ایمانتون بزرگتر میشه، خدای ما در نظرمون بزرگتر میشه. همونطور که امروز از معلممون شنیدیم، تنها کسانی از کتاب مقدس سوال براشون پیش نمیاد که هرگز اونو نخوندن. پس اشکالی نداره سوال کنیم. و ما امیدواریم شما سوالات زیادی بکنید و این درس ها اکثر اونها رو جواب بده و کمک کنه حتی بیشتر بپرسید. خب، وقت امروز ما به پایان رسیده و ما امیدواریم که از درس امروز و از حضور خداوند عیسی مسیح برکت گرفته باشید. امیدواریم در برنامه بررسی این شاهکار الهیاتی باز هم با ما همراه باشید. تا برنامه بعدی دعا میکنیم، آرامش و شادی خداوند توسط روح قدوسش بر شما قرار بگیره